ارز شد که به کلماتی که اصحاب ما به جابریت و کاسریت گفته بودن شد که این مردالی متعرض کلمات اصحاب ما ارز کنم که برای توضیح مطلب مجبور شدیم میمیداری بریم به اصطلاح و زمینه هایی که این اصطلاح داشته به اصطلاح و زمینه هایی که به اینجا منطقی البته من قبل از اینکه وارد بحث بشم این دکتر رو کلن دیگه داخل چون بحث ما مفصلند تا راجع به حجیت خبر بوده این مطلب انشان الله تا آلا روشن شده باشه که صدرا بحث حجیت بحث بسیار طویل و عریضی در خبر هم به لحاظ کبرا هم به لحاظ صغرا و تقریبا میشه گفت که کمتر میشه پیدا بکنیم مثلا دو تا از بزرگان رو که اتفاق نظر کلی داشته داشتوا رو یک حدیث که مثلا این حدیث صحیحه یا این حدیث ضعیفه یا به این حدیث عمل نکنیم بکنیم خیلی کم میشه. یه بحث خاصی داره، نه فقط در ما. حتی اهل سنت هم همینطوره. اونا اختلاف شدید دارن. خیلی از احادیث هست که فرضون بخاری آورده مسلم نی آورده، مسلم آورده بخاری نی آورده. این هست، یعنی این طور نیست که در حد خیلی پایینی باشه. و خیلی مسئله بالاست. بعض از احادیث رو سم به مناسبت در کتاب حاکم میگه با در حدیث اجماع علما على تصحیح خب این اجماع علماء که ایشون میگه خیلی عجیبه چون خود بخاری و مسلمون حدیث قبول نداره اینجوری اجماع علما است که دو تا از بزرگان اهل فنشون اون رو قبول نذاشینه دقت بفهمید ما هر چه بخاییم تحلیلی رو ارائه بدیم به این معنا که بتونیم مثلا مجموعه از احادیث معتبر رو بگیم که همه قبول داشته باشه این نیست نداریم انصافا این چیزی وجود نداره به خیلی مسئله مسئله پردرده این به خود تعریفش چه برسه به دهاز تشخیص اومد که اونجا هم اختلاف خیلی زیاده این اولا در ذهن و بارتون باشه خیلی از ما اگر چیزی رو الان مطرح میکنیم این به این معنا نیست که مثلا یک جواب کلی که همه مثلا فقه نه از علامه بین عمل کرده باشه نه اختلاف به یک نواخ نیست اون اتجاه عمومی رو ما نقل میکنیم اون گرای کلی که فقها و علما دارن نه اینکه حالا همه مثلا اینطور باشه راجع به بعضی از مسائل که صحبت شد بنا شد که مقداری بعضی عبارات اهل سنت رو که مناسب با ما هست خونده بشه چون دیروز ایمالای توضیح داریم تا بعد ببینیم که این مطلب کجا موجود قبول کنیم کجا نتیجه نهایی چه بشیم من الان از این کتابی اسمی نام تدریب و رابی مال جلالدین سیوتی در شرح کتاب به کتاب اصل کتاب از بس که دقت نکردیم اصل کتاب به تقریبا تقریبا نویی این خود ملد تقریب امام نرویز که از روزرگان نشون میگم اصلا چون همیشه این کتاب پیش شما بوده نگاه میکرم یعنی اسم پسیلی شبه آدمیست نگاه نمی کنی کنم که بعد از آنست میشون تقریب باشنم برد علایه حاله این تقریب و رابع که شرن من این دو در دو جلدی در یک جلد بسیار تجلیل شده جلد اولش که از همین چاپی که تازگی شده چون بلی هم نیست علاقی حاله این رو متعرض میشیم که انشاءالله تعالی واضح بشیم ارز کنم که در تعریف صحیحه بودن یکی تقسیم حدیثشون از هم جلد اول صفحه 62 حدیث گفتر حدیثا صحیحان و حسنان و زعیفان بله که این به اساس سه اسم عرض کردم علماء ما چهار قسمش کردن البته در تفسیر صحیح و حسن هم با اینها اختلاف دارند، لکن علماء ما چهار قسمش کردند و موسق را اضافه کردند حالا برای عبارت علما هم آخر بحث اگر شدن یه نکته عبارات مرموم شهیده سانی رو هم از شرک هدایی درایی ایشان بخونیم که روشن بشه بله که حدیث چهار به اسم صحیح و حسن و زیب البته این اصطلاحاً تقسیم اصلی تقسیم های فرعی هم داره اونو تقسیمات فرعیشی بله و ایشان در شرحی که خود جلال سیوتی داده یه مقداری متعرضی شده که آیا واقعا دو قسم صحیح و ضعیف یا نه سه قسمه <تصفح> از قدیم مرموم استادین او تو درسشون بیشتر می معتبر و غیر معتبر دیگه این چهار قسم نمی کنن. چون می فهمدن ادله خود جید داشته آمده خبر میشه می معتبر یا نیمی شه معتبر دیگه چهار قسم ها نداریم اینجا هم عجیب این مطلب رو هم داره دلیل الحدیث و صحیحون و ضعیفون فقط ولحسن مدرج در انواع صحیح قال العراقی فینوکتی ولم امر منسقل خطابی این خطابی که حمد ابن ابراهیم باشه این در سال 388 و, و, و معاصر شیخ صدوقه اگر این مطلبی گفتن چون من نشده توضیحات بیشتر رو در کتاب دیگرشون ببینم اگر این مطلبی که گفتم راست باشه معلوم میشه که از زمانهای شیخ صدوق این تقسیم سلاسی متعارف شده و لکن به ذهن میاد که بله درست نباشه فکر نمیکنم خودشون خودشونم اشکال کرده چون قبل از خطابی تو ترمذی داره حسن فکر نمیکنم نوشته بدم عرمان سبقل خطابی الان تقسیم مذکور و ارکان فی کلام متقدمی ذکر حسن و هم موجود اون فی کلام شافی در کلمات و قدما بوده از هم قرنه هم که من عرض کردم من عرض سوم این قرنه چارم هم و خیلی چارم به نظر من هم در کلماتشون در قرن سوم هست بله ممکنه که این استلاحی که بعد آورده به این تحدید نبوده تطبیق میکنن. مرادشون حدیثی بوده که از درجه ضعیف بالاتر صحیح نیست. اینو حسن میگفتن. منظورشون چیشون؟ نه اینکه مثلا این آقایی که در این سال مثلا در قرن 4 بوده ایشون اصطلاح حسن رو آورد. نه این اصطلاح قبل از ایشون هم هست. بله. و, و به نظر من نکته اساسیش اینه که و انشالا چون نمیخوایم این روز ما بارده بحث حدیث احل سننشی هم نمیخوایم بشیم چون رس احل الا اگر آن مراجعه کنند همی کتاب حدیثی چون در تفسیر حسن هم اختلاف دارن من به نظر من در کلمات سابقیشون حسن بوده و مرادشون این که خوبه ولی به درجه سه حد و ممکنه مثلا با بعضی از قرائن به درجه سه حد وقت در تفسیر صحیح اینجور گفته عرض کردم من دیروز متصل سند او به عدول ثابتین من غیر شذوز و لا علته حدیثی که تمام رواتش اعتدال و ثابت باشه و شذوز درش نباشه علتی هم درش نباشه این به اصطلاح در حد وقت در اینجا راجع به این که آیا این قید من دیروز روز عرض کردم در کلمات علامه این قید نیامده من غیر چوزوزن ولا ال ظاهرا یعنی علامه رحمه الله متحمدن نیارده حالا من خود کلمات علامه در کتب و نگاه نکردم لیکن مربوم شهید در درایه تصریح میکنه که حدیث صحیح است که امامی ظابط نهم بکنه عدل نهم بکنه و این اعتراق شدود کنه حتی اگر شاز باشه مخمال باشه سری در توضیح عبارت میگه من به اصطلاح به این کلمه رو بردم چون صحیح حدیث صحیح اونه که سندش اینها باشه حتی اگر شاز باشه بعد ما اینجا برای اینکه که مخالف با آمه باشیم چون آمه شرط کردن که با شدوز به علت نباشه لکن ما شرط نمی‌کنیم. راست این مطلبی رو که شهید سانی رحمت الله علیه تصریح فرموده، این ظاهر عبارات اصحاب ماست دقت پرمودین این ظاهر برد البته ایشون برده ایشون ایک بحثی این جلداره اشاره می که ممکنه بین یعنی از ظاهر و که بین فقها و بین محدثین در این جد فرقه که آیا شزوز درش معتبره یا نه یعنی خلاف وش شزوز بعد البته از ایشون از بعضی ها کرده از بعضی ها کرده که این قید رو شرط نکردن احتمال داره علامه رحمه الله این مطلب رو از اینجا گرفته احتمال داره چون نوشته بعضی هاشون شرط حالا من عرض می کنم و اما این که حالا این از کجا این اصلا از کجا این قید داره که باید شاز نباشه ایشون داره که از بعضشون نقل میکنه اینه از خوابت حدیث زاد و که فی حد صحیح قال و فیه نظران علام مختصر نظر فوقها یعنی نظر ذر فوقها میکنه اراست اینکه این یک نقطه ایه که معلوم میشه در همون وقت هم محل کلام بوده که چیه یعنی مراد از این که به اصطلاح شذوز نباشه بله بعد بعد از اینکه های ایشان انجام میده در این مطلب در این که این مطلب رو از کجا اصلا این قید این که من غیر شروزه و ایشون قدیمتره شخصی رو که که منم ارز کردم مهدوان قرن سبون باشه بله این قدیمتره شخصی رو که این قیبه ازش ارده مسلم میدونه اخدال حد در مذکوره بنام این کلام مسلم فه انهو شرط مسلم فی سهی ار یکون متسر الاسلام به نقل عن انسقه من اولیه الامونتها اینه از اول سن تا آخر سن غیر شازن ولا معلن و حالا و حدو از صحیح تعریف صحیحی فی نفس این ایشان به اصطلاح اگر همین توجیه رو که من دیروز عرض کردم چند بار عرض کردم این از این معلوم میشه که اصل مطلب رو اصل این مطلب رو از مسلم مسلم آن خود قرن ثبوته میان دومه نیمه دومه قرن سومه مسلم شاگل بخاریست و بعد از بخاری وفاتش بعد از بخاریه احتمالا این مطلب از اونجا آمده یعنی تا اینجایی ای که ایشون نقل کرده من دیگه عبادتیشون نیمی کنم چون طولانیه تا اینجایی ای که ایشون نقل کرده قدیمترین ای که این قید رو اضافه کرده یعنی قید این که به اصطلاح شاز نباشه و معلول نباشه اون صاحب صحیح مسلم مسلمون حجاجون چابوری ایشون به اصطلاح اصل شرط به ایشون برمیگرده یه مقداره که هم کرده و صحبتهای خاصی البته در اینجا در این صفحه هفتاد و چهار من فعالی رو بگیم چون در وقتی که ما روایات رو میخوندیم در بحث حجیل خبر واحد ارز کدم اهل سنتم به یک عده از روایات تمسک کردن در حجیل اینجای منگود از اون روایات جا. رو را آورده بی مناسبه در این جلد یک صفحه 74. ایشون یک مقداری از همون روایات رو اورد و در صفحه 72 به 73 میته در 72 شروع میکنه 73 به تفسیب متعرض راهی معتقدلی میشه عقلی گراها که اصلا خبر رو حجت میکنن. و ول اولی جواب این را معتقدلی لایق بل الخبر ادارا واقع العدل واحد خبر واحد عدل رو حجت نمیزن همون حرفی که بین به اصطلاح چیز بوده به اسطلاح بین علمای بغداد ما مثل سیده مرتضا یعنی اصلا همه حرف جباییست بینه لا یقفل الا الانغم خبر و عدل آخر او عمده و موافقت الله لالکتاب او الله خبر آخر او یکون و منتشرن بین الصحابه. او عمل بهی بعضا هم حکاها این درشه اول حسن البسری اشتواه اول حسین البسری از بزرگان معتذر است بعد اشتباه چاپ کرده بعد ایشان ولی المعتذره پیرد خبرن واحد اگه یاتون باشه ما متعرض این نکات شدیم که مرحوم سلمزر تمام کلمات مرحوم سلمزر نخوندیم این تمام حرفایشونو متعرض نشدیم در از این این البته این بین پرانتز بود که ایشون به یک مناسبتی هم در اینجا متعرضه رعی عقلیگره ها که خبر واحد رو روجت نمیدارن این میمیداری شده این میبارم خودش روایات رو, رو که داره بر روجت خبر میکنه این راجعه به این قسمت. پس اون مطلبی رو که ما دیروز ارز کردیم این طور ظاهرش اینه که در اول در تعاویرشون نبوده بعد شده یعنی بعدها اینا به اسطلاح خودشون این مسئله رو مفرح کردن حالا به این مناسبت چون کلمه شاز رو هم به کار برده چون من خواب یه مقدارید از روایت خودمون هم بگیم در این صفحه 232 ایچون در نوع سیزده هم به قول خودوش از شاز این که شاز نباشه معلول نباشه کلمه شاز رو هم تفسیر میکنه از شاز و اندش شافی و جماعت بن علماء الحجاز خب شافعی مترفای 234، یعنی اوائل قرن سه و ماره سقه مخالفن به روایت ناس خود اینها در این که اصلا شاز چیه اختلاف دارن خود اهل سنت یه تفسیرش اینه که سقه نقل بکنه خب دقت بکنیم مخالف با اون مشهور نقل میکنن این اسم شاز یعنی به عبارتون اخرى شاز رو در جایی تصور کرده که مقابل داره در شاز اینه بعدشم یه نکته خیلی مهم اینه که راوی اون خبر شاز باید سقه باشه این دقت بکنیم خبر شاز خبری نیست که صحیح نباشه اون اگر صحیح نباشه خود بقید ساقطه احسیاج رو بحث نداره. اینا در تفسیر خبر شاز عقص میکنن که راوی سغه باشه یعنی خبر صحیح باشه لولشو زوز دقت میکنه لیکن این نقل شده مارب از سغت و مخالفن در روایت ناس این مراد عشازه هم صحیح باشه هم در مقابل خبر مخالف داشته باشه لا ان یربی مالا یربی غیرو یه تفسیر دیگه شاز اینه که اینشون میگه نه مراد این نیست گفتن میگه ولی قال الخلیق بللی علیه حفاظ الحدیث چون آشافیرو فقیه می دونم. انشات ما لیس له ایلا اسناد واحد یشل بهی سرعت او غیر او یا غیر سرعت فما کان عن غیر سرعت فمترکان و ما کان عن سرعت توکفیفی فلا یحترجمه پس در نتیجه این تفسیر دوم این شد که شاز نیست که یک نبت نهال کرده میخواد مقابل باشه میخواد مقابل نباشه و قال الحاکم حاکم نشابی هبه منفرد بیهی سقتون ببینید همهشون در تفسیر شاز شرط کردن که خبر سهیل باشه به اصطلاح ما راوی سقه باشه ولیسه لهو اصلون به متابه کسی دیگه مطابق دنبال او نقل نکرد تعییم نشده باشه این تفسیر به اصطلاح شازه بعد خودی ایشان این سه تا تفسیر برای کلمه شاز اینشان روشن شد پس علاکاللهانه اونی که به اصطلاح باید در مقابل به اسطلاح چیز باشه در مقابل او کسی باشه یا در مقابلش کسی نباشه این کلمه شاز در اصطلاحی که اهل سنت وردن البته حالا چون حالا به این اینکه این کتاب دست من هست این صفحه دیویست سی و دو بود در صفحه دیویست و پنجا و دو انا پنجا و یک منذر میخوام انا چون گفت من غیر زوزن ولا اگر معلن که معلول همش میگن بله ایشون میگه این معلل خیلی مشکله که ما پیدا کنیم علتی که در حدیث هست مرضی که در این بیماری که در حدیث هست حالا ما جای معلن میگه مشکل مشکلی داره حدیث یا به لحاظ اسناد مشکل داره یا به لحاظ فرض بنویم که متن مشکل داره یا به لحاظ هر دمو دا مشکل داره اون وقت ایشون شروع کرده صحبت کردن که مثلا ممکن است یک سندی باشه اما این مشکله مثلا ما عبدالملک بن عتبه هاشمی چنینی رو داریم عبدالملک بن عتبه هاشمی در روایات ما این غلطه این علتش اینه که این عبدالملک بن عتبه سیرفیه است این هاشمی نیست این در روایت‌ها هم دارن حالا من وارد بحث نمی‌شم مشکلاتی که گاهی یک سند به حسب ظاهر مشکل خاصی نداره اما وقتی دقیقت میکنیم میبینیم, میبینیم این سند خرابی داره وا که مثلا از این شخص علی بن حکم نهم کرده که فولاد از جایی رو برد، لكن حالا من هم نمیدونم چرا خود من هم هنوز نمیدونم این اشتباه از کجا پیدا شده. یعنی این آقای علی بن حکم استادش نشناخته، یعنی که استادش نشناسه. نو shafts بعد خرابی چند تا حدیثش 30 40 تا حدیثه. علی بن حکم عبدالملک بن نظر غلطه. اما که قبول کردم. ما این صحیح عبدالبرک ابن عثبه سیرت هاشمی هم نیست خب این خیلی شهر می‌خواد که طولانی چند جلسه باز شرحش بدیم آقایانم در اینجا خوب وارد نشویم در بحثش کپ ماکان استراحت به اینها میگن معلل یعنی علتی دارن و اون چه به زبان فارسی مشکلی داره یا سند مشکل داره یا متن مشکل داره مثلا این متنی که اخیراً حدیث خوندیم که اون نیم صفحهش اضافه شده این نیم مال خود حدیث نیست مقایسه بین ولذا خود اهل سنت خب دقت بکنید این نکتره که من عرض میکردم تو بحث خود اهل سنت هم متنبه شده اهل سنت اینطور نوشته در تعریف علت و نوشته با ها و من اجر ها راستم بیگه این خیلی مشکل شناخته علت سنت که این حدیث معلول سندن یا مدنن یا هر دو یه نام نامن اجل انه احادیس یتمکن ها اهل الحفظ و الخبره و فهم ثاقب و و عباراتن عن سبب قامن قاده ما عن ظاهر سلامتهم آدم باعثه رو زاهر درسته مراد نجاشی اسمعیل بن جابر جوفی رو آوردن دلیل در کتاب شب در سن بعد سن اومده خب اون غلطه اسماعیل بن جابر جوفی نیست اصلا حالا نجاشی هم از یک مستری اشتواه نرکن و یکتر وقع ایلال از جامع شروط از سه زاهرن یک سندگی که و ظاهر صحیحه این میگه این علت داره این مرضی داره مشکل داره بعد خود ایشان درگر و تو درک این علت از کجا درک میشه از کجا شناخته میشه و تدرک به تفرد رأی و به مخالفت غیره لفت ما غیر اعلام، مقرائن توند به قول آرفا علاوه همین به ارسال آو وقتن و دخول دخول حدیث فی حدیث او غیر از به حیث و یغلب و ف و به علم الحدیث یا میگه این حدیث درست نیست او یه توقع یه تردن حالا بر وطریق و راه الى معرفته هی اگر میکنم حدیث معلل رو بشناسی راهش چیه وطریق و الى معرفته معرفتی جمع و طرق الحدیث با طرق حدیث نگاه میکنه و نظر که اختلاف رواتی و ضبطه و اطبانه تمام اینها رو و کس تحلیلو تعلیل ارسال غالباً علیت حدیث یعنی بحث بزار صحیحه لیکن این ارسال داره یه حدیثی از رباب احرام قبل المیقا که خسیم سید ان حمال ان الحلبی به اصطلاح حالا در نصخه یا ان علی ابن عبی حمزه بطاینه حالا توی نصخه تحذیب اون حلبی آمد خب این رو بینی از زمان شیخ توسی قبل شیخ توسی هم پیسی نگه همه اصحاب بردن بعد شهر روزی مرموم جامان مقاصد صحیح صحیحان خب نگاه کرده حسیم صحیح هم مادم. هر کنون باشه خب این خیلی چیز ترجعبه تا قرن دهان سال ما آدم در منطقه متنبه شده که این صحیح نیست این از قرن پنجم تا قرن دهان یک حدیث در کتب اصحاب ما آمده و حتی مثل مرموم محققی کرکی در جاون و تصویر میکنه که صحیحو غیر از این که لو میدن هست خب الان هم میدن الان هم این دهی صحیح میکن برنه میشد بگه حدیث که صحیح هم نیست خب مرموم منتقه ملتفت شده صاحب منتقه صاحب معاله میگه با این همماد یا همماد ابن یا همماد ابن عیسیست اگر همماد ابن ایسا باشه اون از حلبی نهار نمی هم مادر این عثمان باشه از حلبی نهار نمی کنه این از میکنه. این هر کدوم باشه یکیش خرابی داره این که بگه وقت دارد تعلیل و بلیرسال زیادی از تحلیل میگم این حدیث رو سریعه کنه نویشن سریعه نهی مثلا توجه نشده باشه لیکن مرحوم صاحب معاله متنبه شده که این امکان نداره این مشکل داره چون یک حماد از این بر خراب میشه ارسال بده میگه یک حماد از اون ور ارسال بده میکنه یا قبلش ارسال یا بعدش ارسال این حدیثی نمیشه لو اصطلاحا به این حدیث گن معلول درا کردن یعنی چی شود یعنی به حسب ظاهر شما نگاه میکنید روات سر هستند میگن صحیح میشه چون واسه بیارین صحیحه اوه که اینا بیگن نه این صحیح نیست چون علت داره علتش عبارت است شبهه ارساله یا قبل از حماد ارسال داره یا بعد از حماد یکی شما ارسال داره چون اگر حماد ابن عیسی باشه بعدش ارسال داره حماد ابن عثمان باشه قبلش ارسال داره یک جویش خرابی داره این اصطلاح همیان معلوم انشالله این مطلب فکر میکنم انشالله روشن شده باشه بعد برای مطلب پس تا اینجا بعد سهیح رو روشن شد من دیروز ارز کردم برگردیم به گفته دیروز خودمون ارز کردم که علمای اهل سنت مشهورشون این قید رو بردن که حدیث صحیح این است که باید تمام طبقاتش عقل و باشه تمام طبقات اتصال هم باشه ارسال نباشه شزوز هم نداشته باشه بله همه نوع در مشکل ارم هم نگه فرمه و شاید چون این مطلب البته یک اشاره ای من کردن نخوندن تمام عبارات و چون طول میکشه که معلوم شد اصل این مطلب برای اولین بار توی صحیح مسلم آمده که ایشون نظر متفقه 170 و 160 و خورده چون شاگرد بخاری بخاری 25 17, و 56 اونو میذارم ایشون نگارند 160 70 1 به هر حال ایشون مسلم نه دارید شما 200 دیویسی شد و آقای من گفتم کار. ولی اون مسلم با خوردن این دیویس و هفته، هفته دیگه. تو زمان نیفت سالا وفات مسلم. این دوچه البته نقل کرده اینجا که بعدشون گفتن این قید معتبر نیست. اما علامه در کتب اصحاب ما قطعا این قید رو برداشته. این رو تمام این بود. این علامه این قید اعتراب شزوز من قید شزوزن رو برداشته میخواد شاز باشه یا نباشه و ارز کرده مرمو استاد هم فیما بعد همین راه رفتن البته این راه رفتن و استاد یا علامه نه به این معنی است که اینا مقلب بودن بعضی خیال بکن مثلا این آها دنبال و اون آها, آها نه اینا تقلید نیست نتیجه ی تفکر دوتاشون یکی در میاد اشتباه نشه اینا رو مقلب نمیگن اما علامه چرا علامه این مطلب رو گفته چون احتمالا علامه تمسک با یه کرده اینجا اكو فاسقون بنوع فتبین میگه ما تعبد در شرعاً خبر که تعالی می قبول کنیم حالا شاز برج نبود چون تمسک با یه معناش تعبد به وجهی رخ بده ما کاری به سری و عقلا فهم و عقلای نداریم ما کاری جدا تعبود شرعیه شارع فرموده شما به خبر صدق عمل میکنید آلا میخواد شاز باشه؟ میخواد شاز نباشه ما دنبال این جهت نیستین، این احتمالاً الان آم اما مبنای هست استاد باز آلا آم باعی تمسکه اشان تمسکه رو درست نمیدونن ایشان مبناشون تمسکه به سیره وقاله است ایشان اینه که سیره وقاله برای این قائمه که به خبر سقه آلا میخواد عقل باشه امامی باشه یا نباشه به خبر سقه امن میکنن تعبدن ولو شزوز توش باشه بله اگر شزوز و مخادفت خیلی شهید شد به حس این که عامه مثلا مردم قبول نکنن یا حسوق به خلاف فیدا شد به ترمیر خودشان و قطعی بر رفع خبر و نفی خبر چون ترمیر به تسانم تسانم شد بر نفی خبر قبول اینجا دست بر میتاریم. اما اگر به تسانم قطعی هم چی شد به تسالم نرسید و رضا استاد هم خبر صحیح رو حجت می‌داره و هم خبر موثق رو پس دقت بکنید اگر بی استاد با اندامه یا با شهید یکی درآوردن در این قسمت که شذوز باشه یا نباشه اما در خود کیفیت طرح مسئله و دلیل مسئله با عنوان مسئله فهم می‌کنند مرحوم اندام خبر امامی عدل رو صحیح میتونه و رو شاز باشه. مردم استاد خبر سره رو معتبر میدونه. و ما مااصل کردیم قاطی تغییر نش بگن صحیح مهم پیشیشان معتبره اینا از بعض ذخره صحبت ما رو میگن آ چه دا داری داریمیم خبر سه قسمه صحیح و حسن و ضیید. یا به بده باشه عمل میکنیم میشه صحیح را نمیکن میشه زیم یا حسن چه نکی داره میرییم دوتینی چی شد این؟ خواستم نکته رو شب بشه نه فهم که میان فهم اونا میگن حسن رو در یک شرط اعمل میکنون نه مطلب نه فهم اون کسی که تقسیمه حسن میکنه از ایش فهم حالا اگر ما این باشیم چون آنیم اگر از کتاب های مرحوم شهیرستانی البته خود حالا من قلاله شد در بحث وقت اون میشه من یه مطلب لیگم از این کتاب میخوام بعد بریم وقتی این مسئله خوب دقت کنید، این مسئله ای که ما گفتیم که خبر ضعیف پیش اونها قابل قبول میشه یک مطلبی رو در صفحه یک امکان داره اونزی که دو دقیقه رد بشم از وقتی اون چیز بده والا ناراحت نشن. در صفحه 176 در متن کتاب این خیلی لطیف روشت دقت بکنید که از فوائد نکات کورس سوم از سالص اذا روقي الحديث من ضعیفه، اگر حدیث از وجه ضعیف نہ باشه لا یلزم ان یحصل من مجموعها حسن لازم نمیاد که بگیم چون چند تا وجه با هم دیگه زنیمه میشه مشخصه خب دقت بکنید بعد ایشون میگه بیام حساب بکنیم اگر یادتون باشه من دیروز عرض کردم مرموم محقق میگه که اگر خبرین داشتیم ضعیف هم بود قرائم بود عمل میکنیم به خاطر که عمل به قرائن اون خبر میشه معیه ما ارز اینا به عکس میگن میگن اگر خبر ضعیف بود و عمل شد قرائن بود اون خبر میشه معتبر دیروز اینو گفتیم یه بحثی که کردیم این بود این بحثم به اینه پیش سنیا آمده که اگر خبر ضعیف بود بعد وجودی بود که تاییدش می کرد. خب دقت کنید فقط نکته رو فراموش نکنید اینا وقتی میان وجود مراد اسانید وجود در نقل ما وقتی میگیم غرایب غرایب در فتوا خب دوستای ما فرق ما رو این درست فهمید داشت این سوال رو مطرح کرده که اگر خبری ضعیف بود روشن شد حالا مؤیداتی داشت آیا مؤیدات کارش اینه که این خبر معتبر میشه، صحیح میشه، آدم. ایشون میگه اداره بیان حدیث و بن وجوه ضعفه، لا ینزل عن یح سلم مجمعها حسن و نمیشه بگیم حدیث حسن میشه و حتی اصلا ممکن تا صحیحشم بدونه. بعد اینا پس ما یک کلامی رو از محقق نمر کردیم که میگفت نمیشه. شبیه این مَجْمَع یک کلام از اصحاب که نه این قرائن خبر ضعیف میبره بالا جابه بولا اینا اهل سنت دقت بکنید اینا میگن ببین ما وقت حکم به ضعف حدیث میکنیم رو چه جهتیه بل. ماکان کان ضعف لضعف حفظ راوی صدوق الامین ما میگیم ضعیف چون راوی صدوق هست اما ضعف حافظه داشته حافظه ضعیف بوده، ادخال نداشته، ضبطش دقیق نبوده، اما آدم خوبی بوده اگر این وجود معیل آمد، اون خرم میشه معتوم بوده خطره. چون مفروض اینه که این آدم فقط حفظش خراب داره. اگر این حدیث از طرق دیگه آمدن رو نمز ضعیف باشه، این کمکش میکنه به مجیهی، مروجه، این آخر و سال حسنم درک چی شد؟ دیگه باید حساب بکنیم که از کجا حکم به زعف کردیم و که با علاقان زعفها لعرساله این زعف حدیث به خاطر ارساله از راه دیگری آمد ارسال نداشت این تقریتش میکنه ظالب مجیهی من وجه آخر این وجه آخر نقلم وجه آخر پیش از ما فتره یعنی اگر اون حدیث مرسل بود فقط کنم مرسل ابن نبی اشکال داشتیم اما اصحاب عمل کردن این زال فعفه روشن شد چیم خواهد بود؟ و اما از زعف و فسق رابی اما اگر فرض کردیم زعف مال فسق رابیه چون رابیش واسقه فلای و از سروفی و غیره دیگر گیر بخواد عمل بکنه نه حالا از فسق بالاتر کرد به اصطلاح از فسخ بالاتر بله از درجه فسخ بالاتر حدیثی است که مثلا کذا و وزا باشه ما داریم احادیث در کتاب کافی محمد نادری سیگرافی که معروفه به کذا این تو سندش واقع شده میگن او اگر وجوه دیگه بشه اضافه بشه اون هم حدیث رو صحیح نمیکنه حسن نمیکنه البته اونا بیشتر نظرشون روی روی به اسلام موضوعه اگر وزن شده باشه چون میگن حدیث موضوع اصلا جهده و شواهد همگیان تأییدش نمیکنه دقیقا این نکته ای رو که ما اینجای روز نرکنم از این کتاب این خیلی مؤثر شد در اون نکته ای رو که از مرموم محقق نرکنم کردیم پس بنابراین این معلوم شد که نکته اینه سوال علمی تمام این بحث ها اول مطرح شده سوال اینه حدیثی روی که حکم میکنیم به ضعفش اگر وجوه دیگر آمد این وجوه دیگر اون حدیث رو اینا میگن حسد قرار میدید یا پیش ما معتبر از حق گفت نه اعتبار به همون قرار نه حدیث معییت میشه این کردیم این زواهد ما اینه که نه اون حدیث معتبر میشه الان خوندیم از کلمات اهل سنت اینا گفتن آقا فرق میکنه منشأ ذف فرق میکنه خیلی. اگر منشأ ذف ارسال باشه از راه دیگه بیاد برای تقلیت میکنه اون حدیث قبول میشه اما اگر منشأ ذف کذاب باشه از طریق دیگه بیاد تو اون حدیث تأثیر نمیکنه کذاب کار تو رو میکنه اگر من صرف فسخ باشه اون کاری نمیتونه گفت. مخموان اگر یادتون باشه چند بار گفتم علمای اهل سنت هی اصطلاح درست کردن. ما چون قاعده به حجر خرم نیستیم به این خیلی اطلاع نمی به این مناسبه تا دهید. ایشون اینطور میگه. این خاتم مال خود جلال سیوتیه. میگه من الفاظ مستعمله اند اهل الحدیث المقبول فالمقبول. گاهی شما گفت بگن این حدیث با اینکه ضعیفه یا در حسن داره به تعبیری ایشون ما قبولش داریم مثلا معقولا هم نازل به شما میگه الفاظ رو محدثین به کار می‌برن ببین ما کمتر این کار رو کردیم اون الفاظ که ال جیه ال قوی از صالح معروف محفوظ ال از ثابت اما ترویم مثلا شما ممکنه سالهان درس خارج هسته باشه هیچی استعبولات رو تعلیصیم به کار نمیبریم وقتی شروع میگه فهم من جایید فقال شیخ الاسلام خیلی کلام علا اصحال اصحال میگه که مراد جایید که جایید یعنی با صحیح یکیه بله بله شواهی دیو بود من میخواه بله هم اعوازشون میخواه اللا احنا جهبه جو جهبه یعنی کسی که دق لا نوعاً و جداً صحیح الاجهید الا ان نقطه تن کعنیت تقر حدیث ان و انل بصله لذاته یعنی حدیث فی نفسه حسنه و ایرترد در فی بلوغی از صحیح <تصفح> یعنی یک شواهد نشون بده که این صحیح شده شواهدی نماشه انشاءالله شو به صحیح نرسیده <تصفح> میگی مبگی جایه قوی هم معنیش هم می‌دونه قوی هم یه وقتی من توضیح دادم در اصطلاحات ما از زمان علامه مجلسی مطرح شده قبیل در اون مقابل اون چهار تا و اما از ساله ایشون بگه فقط تقدمه در چه انسان امی داود انهو شامل و لسهی و لحسن عنوان جامع ما بین سهی و حسن و ساله میان و فی زعیف یسله لی اعتبار چون باز در درجات زحیف هم مثلا ضعیف برای شاهد خوبه در حدی از که کتابت نشه در حدی از که کتابت بشه در حدی از که یکتت چوبه در حدی از که نه در حدی حسنش قرار بده و ام بالمعروفه و مقابل منکم و ام محفوظ در مقابل شاز و المجرون و ثابت یشمالان ایلن اتقال کرده هفتش تا لفظ آوردن که خیلی مفهوم و مدلش واضح نیست و باز یک لفظ دیگه تا من الفاظه میوان علمش مشبه این علمش شبیه بکاش شب رسعیه یعنی نزدیک به و هویت لقا حسن و ما یقاره بود بو. فهوه به نسبت علی که نسبت جید علف سری ما پس برای تا اینجا روشن شد که اجمالا این مطلب بوده اطبعه یه مطلب دیگه هم اینجا بود که نخوندیم حالا اونم بعد اشاره پرد بشه میکنیم یه روز به همین کتاب اکتخاب میکنیم من میخواستم زمینه های این تقسیم و این که شواهد چطور جمع میشه و حدیث حسن رو بالا میبره یا ضعیف رو بالا میبره این رو توضیح بدیم که در کتب اهل سنت بوده ما احتمال بدیم که همین مطالب در کتاب هم آمده بکنیم. لکن به جای نقل فتوا حالا فرض این مطلب رو تمام میکنیم و مطالبی که اینجا هست ان الله متعرض می‌شیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبه